با سلسلی قرآن شناسی امروز یک آیتی از آغاز سوریه بس یکمه انشاءالله باریش صحبت خاط کردیم دی ای آیت شریف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اطلو ما اوحیا الیک من الكتاب و اقم الصلاح ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذکر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون خداوند متعال جل جلاله امر میکنه با پیامبر صلی الله علیه و و همچنین بر هر کسی که قرآن عظیم شانه تلاوت میکنه و میگه که از قرآن عظیم استفاده بکنه میگه اوتل و تلاوت بک و ما اوحی الیک من الكتاب ی چیزی که وحی کرده شده چون خطاب و مستقیم بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و هر کسی که قرآن میخونه و مطابقت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم این احکام بالای امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست تطبیق میشه که ای پیغمبر خدا به او چیزی که به تو وحی شده از کتاب از ای قرآن عزیمشان و اقم صلاح و نماز بخان انسان مسلمان حقیقی وقتی که قرآن عزیمشان تلاوت میکنه بعد از ایمان داشتن و قرآن و, و وحدانیت خدای عزوجل و جل نخستین فریزه که بالای هر مسلمان ادای از او پنج وقت فرض است نماز است چرا؟ نماز ارتباط مستقیم با ذات خدای عزوجل است نماز فاصله است بین مسلمان و مشرک مشرک همیشه وقتی که با خداوند ارتباط میگیرند مستقیما ارتباط نمیگیرند بلکه میره پیش دیگه انسان ها و دیگه مخلوقات میره پیش بطه ها میره سجده می به این خاطر با واسطه ها به خداوند خدا نزدیک میکنن که این واسطه جویه ها در عقیده اسلامی شرک نامیده میشن اما مسلمان حقیقی چی میکنن این وقت که ایمان آورد مستقیما با ذات خدای عزوجل و ارتباط میگیرن و اینمین نماز است که این صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر نماز است که انسان از فحشا و از منکر دور می سازنه خب از سرازمی مسئله ما و شما توقف بکنیم این الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر و ما میخوایم که که مکمل درس امروز در سر این جمله ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر سر ازیب سخن خدا کلش دمی قسمت خلاصه بکنیم و کل درس خدا این موضوع بگیریم زیاد فکر میکردم که خداوند مطال جل جلاله که این الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر نماز انسان از فحشا و از منکر دور می‌سازد. نماز انسان از فحشا و از منکر دور می‌سازد یعنی از کارهای زشت، از کارهای بد، از منکرات, از منکرات انسان دور می‌سازد. آل خیما بسیاری رو می بینیم که نماز هم می‌خوانند، لکن دروغ هم می‌گویند. نماز هم می‌خونه، رشوت هم می‌خوره، نماز هم می‌خونه، گناه هم می‌کنه. نماز هم باز هم به با بسیاری از گناه ها مبتلا هست مشکل در چی هست آیا ما در قرآن شک بکنیم اگر در قرآن شک بکنیم ما کافر هستیم خیعی گرفت که خداون گفتن ما اینه چی قسم جنبه تطبیقی بتیم چرا خیزر ما تطبیق نمیشه اینه صلاح تنحان الفحشای والمول کرد نماز انسان از کارهای فحش از بدیها و از منکرات کارهایی که مخالف امر خداوند است، از ازی دور میسازن و ما اونجا میبینیم یک نفر اینجا آمد نماز خان و اونجا پس در اوتال رفت شروع کرد تو که نماز ازیر که هست فحش و منکر دوست نه، اطمند و بدون شک چیزی که خدا میگه حق است. خیلی نخص در کجا هست نخص در کجا هست پس وقتی که خداوند میگه این نسالاته نماز خبی همه سر نماز خود تجدید نظر بکنید آئین این ای نمازی که ما میخانه میخوان. امین نماز خداوند گفته که از فحشه همون دور میسازند امین نمازی که مردم افغانستان امروز میخانند امین نمازی که در نیم ساعت بیست نور نماز میخانند یا کدام نماز دیگی است که او انسان از فحشا و از منکر دور می سازه؟ آیا کدام نماز دیگی وجود داره که مثل نماز ما مردم نباشند؟ بله. بله کدام نماز است؟ نماز که خدای عزوجل و جل بر ما گفته که ای قسم نماز بخانید ما کلمه میخوانیم که لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله ای هدف دین است هدف دین مقدس اسلام چی است که انسان هر روز سعی و تلاش میکنه که یک موحد حقیقی شود هدفش تقرب به بارگاه الهی هدفش وحدانیت خدای عز و جل خداوند خداونده متعال است بلان ما که لا اله ها. نیست هیچ معبود قابل پرستش ولو که این انسانی مطلوب هر کسی باشه الا الله و غیر ذات الله جل جل باز این جمعی که وقت میقایی به یه هدف برسی وقت میخوای به یه هدف برسی وسیله ضرورت داری یا وسیله ضرورت نداری بله از کدام رو میگه از طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله بر ما رسول الله سلام خوال رفتا و خود دفن شد بیغم رسلم افتا ترکتو فیکم امرین ما برد شما دو چیزت ترک کردیم کتاب الله و سنتی قرآن برتون ترک کردیم و سنت ترک کردیم که در قرآن عظیم و شان برای تو درس میده که به اینی سیستم تو نماز بخواند. و احادیث پیغمبر ایره و شکل عملی تطبیق کرده و اصحاب کرام و آل بائت پیغمبر اینا این احادیث بر ما تشریح میکنن و بیان میکنن پس ما آمدیم بین احادیث پیغمبر را باز کردیم که در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیا چیز هست که به باره میبینیم که در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلام چی میگن در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلام پالید او احادیثی که اصحاب کرام نماز رسول خدا را بر ما تشریع میکنند پس او نماز ما را میتواند که از فحشا و منکر دور بسازن که مثل نماز رسول خدا صلی الله علیه و باشد نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم بود نماز پیغمبر خدا چه قسم میخواند یه کسیس میگه ما مادر یا مادر کلانم دعای کنود یاد داده 20 سال پیش ما بو سامود دعای که مادر کلانم برم یاد داده 我們 من میخوانم چه قسم بر یاد دادن نستعین که و نستغفировать و نکفرف و لنشکر و کا دعی که روλά نشکر و کا رو کافر میشیم نشکر از مادر کلان سجده را چه قسم میاده؟ گفته صبحان لبیلن، صبحان لبیلن، صبحان لبیلن همی قسم گفتید آه اینه چند سال است، بیس سال است. هستی خودو چه کار هستی؟ خودم تحصیل کردم، کردیم، لسانس کل چیز خانده از روی کتاب و یاد گرفته اما یک نماز خود از کی یاد گرفته؟ از مادر کلان خود پس نماز مادر کلان آیا نماز پیغمبر هست؟ خب می احادیث پیغمبرم میخوانیم که پیغمبر خدا اصحاب کرام نماز پیغمبر چه قسم توصیف می‌کردند. تا ما خدا نماز خدا مثل نماز پیغمبر بسازیم و اون نمازی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دور کاتش، رکاتش دو هزار ملایکر از آسمان پاید وقتی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم دست خواهد طرف آسمان می سی هزار ملائکه پایین می اونو نماز است. چه قسم بود این نماز؟ در صفحه هشتادسه مشکات المصابیح در صفحه هشتادسه مش، مش، مشکات المصابیح عن ابن جبیر، حضرت ابن جبیر رضی الله تعالی عنه یک تابعی مبارک است. این تابعی است. قال ميجا كي سمعتو أنس بن مالك يقول ميجا ما عز عزرة أنس بن مالك رضي الله تعالى ميجا ما صليتو وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتح يعني عمر بن عبد العزيز حضرت عرص میگه که من بعد از رسول خدا صلی علیه و پشت هیچ کسی نماز نخونده که نماز از اون شبه با نماز رسول کریم صلی الله علیه و سلم باشه چی مانا شبه؟ یعنی صد فی ست فی صد مثل نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه بغايل نماز این جوان این جوان کی بود عمر ابن عبدالعزیز اینی این جوان دیدم اینی بچه جوان دیدم که 18 ساله است یا 20 ساله است یا 22 سال است این نماز می‌خوام مثل،, مثل رسول الله صلی الله علیه و سلام خوب میگه وقتی که ما یه گپه شنیدیم حضرت ابن جبیر میگه وقتی که ما یه گپه شنیدیم قال میگه ف خذرنا و حذر نارککو اوو میگه ما رفتیم و حساب گرفتیم که باش در روکو چه قسم کو کرد اذت عمر بن نبد حساب گرفتیم سبحان ربی دفع سبحان میگه به میگه ما حساب و اینجا او عالم ای حساب گرفتن عظیم معنیییی نمیته که 10 دفعه باید بگوی یعنی تاق بگوی شاید اینا در حسابش کمکی چی شدن یعنی تاق 9 مرتبه 11 مرتبه 13 مرتبه هفت مرتبه به اندازوی در رکوع یعنی به ده مرتبه تسبیح بگویین اینا یک مسلمان از خود بپرسان کنه که مدت طول زندگی آیات الرکوعی کردیم که اگر یک نفر با ده مرتبه سبحان اگر کردی نمازت مثل نماز رسول خداست و اگر نکردی خیلی کوشش کن دوبار یک دفعه یک درکات مثل پیرامبر صلی الله علیه و آله نماز بخواد در روز پیامات بسیاری کسای چند میلیون دکات خانه پیرامبر فریند سایبزایی کو سه میلیون رکات نماز خواندیم و هم سام بشمگه ولاده میسین سه میلیون دکاته امی یک میلیون شام ات گروه نشانی پندشانی نمیته که اینی مثل نماز رسول خدا بود کل نمازایت با طریقی خود خاندی این نمازی که ما با طریقی خود می عینی اینی تاثیر ندارن در شخصیت ما تاثیر ندارن در اخلاق ما تاثیر ندارن در احماق روزانی ما تاثیر ندارن بخاطر ازی که نماز ما مثل نماز پیغمبر خدا نیست و سجوده دم نجواش میگه ما از از عمر ابن عبدالعزیز سجده هاش حساب گرفتیم. باش کی قسم سجده میکنه؟ هم که حساب گرفتیم که تسبیح رفته بود سبحان سبحان سبحان, سبحان, سبحان, سبحان گرفتیم. ده مرتبه به اندازه ده مرتبه در سجده دیدیم که حضرت عبدالله ابن عمر سجده می کرد. اینال اینی است نما رکو سجده رسول خدا که بر ما روایت می جن و ما دل ما کفی که از همراهان سست اناسر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستان اما رو دست. از این امرهای سست اما سر خواندیم نماز پشت عزیز خواندیم خاندیم پشت عزیز خواندیم خاندیم پشت عزیز یک روز دل ما کفید که پنج دفع گفتم بتانیم سبحان را بیاله علام دو دفع نمیگیده سیمش که وقت الله اكبر الله اكبر ای الله اکبر رمضان صاحب مسابقه هستا کل مسجدها ما این مبارک رمضان دو مسابقه است یک مسابقه جایزه داره یکی جایزه ش مردم خبر نداره یک مسابقه جایزه داره که او جایزه مسابقات تلاوت قرآن و حفظ قرآن است که اون 1 میلیون و 1 میلیون جایزه داره یک مسابقه دیگه که او مسابقه مرتدوانی در تراویح موتردوانی در تراویست مگری به چهارا دوانده میرن لیکن جایزه ندارن مخ. اگر باز آخرت کدام شیطان بر از اینا باز جایزه بتر بگیر ولی خوب است من تر میکردم که خوب 29 روکات در پانزا در پبا کانم مسابق است هر کس که تانست که کل تراویر در نیم سات خالات کنی قهرمان است کس که باز در 28 رقیقت دو بیخی قهرمان است کس که در 25 بیخی مدال بگیره. یام یک مسابقه است و کل این نمازها مخالف نماز که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حالی که خدای عزوجل بر ما گفت که بگو لا اله الا الله بی لا اله الا الله و کدام رو بریم محمد رسول الله از طریق محمد رسول الله بخوان احادیث این مشکات المسابيح کتابی هست که در کل جهان نام داره و در مدارس ما خوانده میشه و استادای ما برامون امیر یک یکی درس میده و احادیثشان ببینی کل احادیث صحیح و درست دویونه انجام کرده رفتار داره. رواه ابو داوود و نسائی احادیث میگه ابو داوود و نسائی روايت کرده. خیلی حدیث بر ما چرا روايت کرده؟ چرا این عالم ایرا دکتاب وارده؟ چرا این صحابی ایرشت؟ خال اتابی ای چرا ایرا گفته؟ میگه ما به خاطر ازیک که اون مردم شما ببینی که رسول خدا سلام الله و علیه و سلم چه خصیت نماز نخاند؟ جور کن نماز ایتا نزورای خدا؟ سعی کن نماز نه؟ اینجا در آشی کتاب چی میگه؟ اینجا در آشی کتاب میگه که سجد کردن امیر تعداد چی میگه؟ سی حالت داره ادنا، اعلا و اوسط داره سی مرتبه سبحان ربیه اعلا که بگیه ادنا هست پنج مرتبه اوسط هست هفت مرتبه را میگه اعلا هست عمر کی میگیره بسیار عالیه هر قصتیه جوونی که صحت داره راست میخواد اول نمره شوه کوشش کو که در نماز هم اول نمره شه ببین پس کس که نمیخواد که نمازش مثل نماز رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشه باید از 7 مرتبه کم سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلى اگر وا ضرورت داشت مریض بود تکلیب داشت 5 تا بگه اگر وا بیخی از دست صفای افتاده بود با 3 مرتبه اطنایشه سه مرتبه اتنایش است اینجا دهاشیه ای کتاب اینجا نشته کردن ولی بهتر بهترش نو مرتبه یازده مرتبه انسان سبحان ربیال عظیم سبحان ربیال عالی بگوید باز نماز میفهمه. وقتی که مزه نماز, نماز فامیده باز نماز در شخصیت تو تاثیر می مهمازد که مثل هر قدر خودم مشابه با رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بگردانی به مو اندازه لذت ایمان برای انسان حاصل میشن خب یک کسی میگه که ولی ما بسیاری وقتا وقتی وقت روکو میکنم میگم سمیه الله اولی من حمیده ربنام اله کل حمد یگانی که همه در روکو رفت سمیه الله یک که خدا بالا کلی خدا میکنه. پس الله و اکبر میده چی طور است در بعضی از مذاهب اینجا نشته کرده که به نظر امام شافی این سمیه الله و من حمید از کردن فرض است اگر کس نکنه نمازش نمیشه خیلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به نظر ما احناف سنت است ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که رکو میکد بعد از رکو به چی اندازه استاد میشه اینجا هم. عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خل القيام والقعود قريبا من السواء متفق عليه صفي أشهدو مشكات المصابيح حضرت بحراء را دیالتالان ها چی میگه؟ چهار چیز میگه؟ قریب به نزدیکی بود چهار کار که پیغمبر سلام میکرد. در نمازش چهار چیز میگه که تو ما ایساف میکرد مثل که مساوی باشه چی؟ به استادن از رکو اینو در عربی میگن. میگرم الله لی من حمیده رکو که میگیم سمیالله لی من حمیده سجده سبحان رو الاعلا و در بین دو سجده که میشینی که ای جلسه میگن بنا اندر رکو قومه سجده و جلسه پیغمبر میگه قریب به چی بود که با, با هم چی باشن مساوی باشن امی حدیث شریفه اگر در روز قیامت حضرت رسول اکرم صلی علیه و علیه سلام از ما پرسان کنن بگه تربخده یک نمازتا امی قسم خاندی؟ لک نمازت هست خانده خواهد. که همین چهار چیزت مساوی بده باشه و کل, کل عمره و آی حدیث شریفه در این کتاب که بده تان مانده بود خبر نداشتی اگر خبر نداشتی از یه ما کم میگیره چرا خبر نکردی؟ چرا نگفتی چرا خیانت کردی در حادیث پیغمبر خدا اگر باز خبر داشتی اگر باز خبر داشتی چرا عمل نکردی قاری صاحب محترم امام صاحب محترم مولوی صاحب محترم دمی حدیث شریف در زندگی یک درک نماز جماعت دادی که به طریق رسول خدا صلی الله علیه و سلان. اگر نماز بت مردم عادت میکنه آهسته آهسته عادت میکنه آهسته آهسته آده از اما اگه مردم رو بگید دیست دیست دیست, دیست, دیست. خب ها سینما تو تنبل آمخته شده تنبل آمخته شده بلاخره ما هم هم رایشن تنبل میشیم و حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست که بر ما صحابی مبارک میگه که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم این کسیم نماز میخواه پس تو میخوای که تو میخوای که نمازتا مثل نماز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بگردنی اگر میخوایی که بگردنی اینی شرایط داره در دا حدیث شریف دیگه. پیغمبر صلی الله و علیه و سلم در مقابل کسی که مثل ماوتو و نماز میخوان چی عکس العمل نشان دادند بودن که سعی. در زمان پیغمبر صلی الله و علیه و سلم مثل ماوتو نماز میخوان پیغمبر صلی الله علیه و وسلم سائل کرد چیکو فکر کو اگه ماوتو میچ باشیم نمی نماز که ماوتو میخوانیم، امی ج رسول کریم صلی الله علیه و سلم باشه چی میکنه؟ سفیه 75 مشکات المسابیح باب و صفت اسخلق اینجا تشریح میکرن که صفت نماز الفصل الاول عن ابی هرائره رضی الله تعالی عنه عزرت ابی هرائره رضی الله تعالی عنه یک صحابی مبارک است ای چی میگه؟ ای عزت ابو هرائی نمیبیده که پیغمبست هم در مسجد هستی اگر نفرم نماز میخونه امی جریانه برای ما و شما قسیش هم میکنه ان رجلا دخل المسجد یک شخص داخل مسجد شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم جالسون فی ناحیه المسجد و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در قسمت مسجد در یک جای مسجد شش تا پیغمبر مسل شش تا یک نفر داخل مسجد میشه و نماز میخونه فصلى این نفر نماز خان. ثم جاء باز میگه آمد فسلم علی دید که پیغمبر سان اونجا آمد گفت السلام علیکم با پیغمبر سلام سلام داد فقال له رسول الله صلى الله علیه و سلم وعلیك السلام پیغمبر سلام بر از نه فر گفت السلام ارج فصلی فانک لم تصلی گفت برو اثر نماز بخان تو نماز نخاندی مثل ما بودوار نماز خان یعنی میخواستم که تیسیز ما شما میخانیم پیغمبر سلام برش گفت که برو نماز بخوان اثر تو نماز نخاند فراجعه بگه این شخص رفت فصلا باز نماز خاند ثم جا باز میگه پس آمد فسلمه باز سلام داد برای پیغمبر صلی اللہ علی بسلم فقال و, علی و علیک السلام پیغمبر سلام اللہ علیکم سلام ارجه فسالی فینک لمتو سالی باز باش گفت که برو برو دارد برو سر نماز تا بخوند نماز نخوندی این دو مرتبه برمان فقالت فی صالفتی او کلیتی بعدها بگه در مرتبه سیوم یا در مرتبه چارمش که نفر باز این قسم خیقه مثلا چندین مرتبه روان کرد علم نیار رسول الله گفت پیغمبر خدا مرا نماز یادم بتی دیگر منو نماز بیدی پس می این پیشتو میگی برو نماز بخوان نماز ده خانی خیلی یادم بتی چه قسم نماز بخانم فقال اذا قمت الى صالاتی گفت اول وقت که میخواستی خ... که نماز بخانی فا اصبیق الوضوع اول وضوعی تا درست بکن بسیاری کساز در اونجا که تشناب میره در اونجا هم میکنن در حالی که از نگاه قو قانون وقتی که یک نفر در یک جای ششتر باشد در این جای استنجا بکنن وقتی که پس استاد میشن چون بعد رگهای از باز میشن پس از بدن از قطرات از خارج میشه و پس بیوزه میشه. بس انسان در یک جایی که رفع حاجت میکنه در اونجا استنجا کردن و اوضو کردن مکروه هست باید از اینجا بخیزین حرکت کنین و جای دیگه که تا شما حرکت بکنین که اگر چیز از وجودتان خارج میشه او باز پساب با و آب ششتش رو از بگون وضوع هم تو درست بگن بسیاری کسا وضوع میکنه خلال انگشتا نمیکنن انگشتای پاهایش خشک خش بسیاری کسا آرنجش خوشک می به این خاطر پیغمبستان مگرد وقتی که وضوع میکردی اول وضوعی خود درست بکن خوب فکر کن که وضوعی تا شده باشه جای از اعضای بدن است که فرض است که باید بشویی خوشک نمانند سمستقبل قبل سمستقبل قبلت بازو به طرف قبلت استاد شد فکبر الله اکبر بگو. بسیاری کسا وقتی که نیت نیت کنن نیت میکنن کنن می تکبیر اولا که بسیار ثواب در از پیشش میره در در جماعه لیکن اتفاق بود که میامت پشیش آرم هست میاد که دارم بخوانم درک آن نماز قطعیه میاد که دارم بخوانم درک نماز قطعیه سو گفتم خدا خراب میکنه یک روز کرات مرا خراب این موضوع ولاد دو روزه خلاصه که یه روز میاد کردم دارم بخوانم درک آن او نشد میاد کردم دارم بخوانم درک نماز قطعیه سو خاص است برای نشد. در حالی که بسیاری از علمان میگن نیت نیت قلب است میان چیز یتقلل اگر به زبان گفتی اگر به زبان نگویم انی کامه دمناجت پشت ما میشه که من بخاله کار نماز فرض و خلاص دمی قلب دست من پشین ما اقتصدار میکنیم altitude کسی یک روز یک استاد بود تو سنم گفتیم استاد نیت نماز تو کنیم گفتم میقسم که تو خیرخانه بیری نیت کن خیرخانه چی می نیت کردم خیرخانه شو نیت میگه خلاص نیت چی هست؟ قلب است. ولو که اگر یک نفر چهار کار نماز فرض پیشی نمیخوانه در دانش گفت نیت کردم بخورم چهار کار فرض دیگر پس آریان شما که آمدن پیشی نمیخوانه نیت درست هست نیت, رو نیت قلبی توست از زبان اگر چی؟ او رو گفتیم ادما مبارک رمضان نه نفر نیت میکنه که اگه صبح روزی فرضی کرد چی شد من یادت کردم تا آخر نیت است دیگه تو تا که رمضان است یگانه کی دیگه که باید پس شویت حتما بخیدم نیت کردم سحر روزه بگیرم صبح تا و شام روزه من قبول گردیدو تو نردی این نفر ویتان نیت تیوره بعضی علما میگن که خوبه بعضی هم این که اما قلبی که پایت میکنن این رو نمی گرددن این نمی نمی که صبحانک الله هم از پیشت تیر شد سوری فاته هم تکبیر اولا که چقدر ثواب داره شما از علماء ای از پیشت ترد میشن به خاطر ازی ای که این نماز بردل خود میخونن نه بر طریقه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و وسلم پیغما هم ماجک گفت تکبیر بس تکبیر بگو ثم اقرا بما تيسر معك من القران باز اون جای هایی که قرآن خیر از قرآن برات چی شد آسان شد تيسر لك من القران تنها صاحب گل با تالیم از گویجارد او بوری فروش میاد بهو سلام میکنه و گوی چیز میکنه در درس ما دیگه دو صد قسم صدامیش نمیشنم تالیم ما خرابه سلام این آل سای بگل اینجا چی هست؟ ما تایست را قرآن چیزی که از قرآن برد تو آسان است اونه او را بخار فمرکع باستای غمستم برش گفت که گوش کن تو رکو کن حتی تطمئن تا که خوب اتمینانت حاصل شود. رکو کو که خوب مطمئن شدی که تو روکو کردیم ثم مرفع باز گفتید خوب سر کبالا کود در سمی الله و لی حمیده حتی تستوی قائمه تا درست استاد شدید ثم مسجد باز سجده بکن سجده بکن حتی تطمئن ساجدن تا که در سجده خوب مطمئن شوی که درست سجده تدید آرام بگیریم ثم مرفه حتی تطمئنش جالسن باز بشی در بین دو سجده تا خوب مطمئن ششته باشی ثم حتی تطم سا جدان باز ژب تا که خوب و تو مطمئن شوی ثم مرفح حدا تطمئن جان و فی ثم رفع حتى قائم ثم مرف حتی تستوی قائئمن ثم پزار که فی سالاتی که کلی ها باز به میدلید کل نماز هایی بخواد یاری تا وقتی که مطمئن در رورک شدی دست جدا نشدی باشی چند درست نششتیم تون مرغباره ملک نزن. اشکال است احادیث است من کل احادیث برطان نمید احادیث را که نشانی کردیم این احادیثی که ضروری مید من اینجا نشانی کردیم یک یکی یک از این را که ما درباره هم. مثلا مثلا پیغمبر سلام چه قسم قیام میکرد آیا قیامی که ما میکنیم و قیامی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و salam میکرد آیا با هم اندازه قیام رسول الله صلی الله علیه و salam چه قسم بود عزت ابی قتاده رضی الله تعالی میگه مکان نبی صلی الله علیه و salam یاقرا بالذحری فل بولین به ام الكتاب و سورتین خب و حضرت ابوسید قدری میکان و قیام رسول الله صلی الله علیه و سلام حضرت ابوسید قدری رضی الله تعالی چی میگن ما حساب میکردیم صفحه 79 مشکات المسابيح هست میگه ابوسید قدری رضی میگه که ما اندازه گرفتیم قیام رسول خدا صلی الله علیه و در نماز پیشین فظهر و العصر فحذرنا قيامه في, في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءه میم یعنی به اندازه الله علیه و حضرت امولطاقل میگه که من از پیغمبرستم شدیدم که در نماز مغرب مرسلات سوری مرسلات خانده یعنی در نماز مغرب هم پیغمبرست سلام سوری مرسلات خانده به بعضی از روایات که ما شما ببینیم که حتی مثلا ابو بکر سیدی حضرت ابو بکر یک وقت مثلا یک جای نماز دادم یک جای نماز دادم یک نفر آمد گفت والا استاد من یک انتقاد دارم سر نماز دارم چی انتقاد داریم والا سبب این که سمی الله و من حمیده گفتی تا حال کل مردم وقت سجده بود تو انوز سمی الله و من حمیده استی ما افتبال و ایم آمدستن یا من یا کسی که فنی در افغانستان مقتدی امام است امام باید با چی کنه؟ مجاهر که امام گفت سمی الله و لی من حمیره مقتدی وقت در سجده رفت امام بیچاره مجبور خدا پرده دیگه کردو چطور کنه اگر نماز قضاوت میشه اما در در احادیث شریف در احادیث شریف برعکس از حضرت ابی موسی قال رسول الله صلی الله علیه و اسلام ان ما جو ال ال امام امام برازیست که مردم به ای اقتدار بکنن از این پیروی بکنن وقتی که امام گفت سمی الله لی من حمیده صبر میکنم میگه ربنا لك الحمد وقتی اونجا یک حدیث شریف است که ما شما خاندیم که باز باد از اون میگه یک صحابی مبارک گفت که حمدن کثیرن طیبن مبارکن تو فی... دیگه برادر است تا وقتی که امام استاد است تو استاد باش وقتی که امام باز گفت که الله اکبر یعنی اینا رو بس اجده برو منوز نگفتیم الله اکبر بس همیه الله اولی من حمیده گفتیم منتظر حدیثتم که مقتلی هم ربنا لک الحم بگوین یادی که ربنا لک الحم چی قسم میگن ما الله حال پس در حال که در حدیث شریف میگه امام برازی است که شما باید چی کنیم مطابعت ازرو بکنیم امام باید از خدا بترسه و امام باید اولین کسی باشه که نماز خدا مثل نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم جور بکنه چون او در مسند رسول خدا صلی الله علیه وسلم قرار داره. پس او باید نمازش اگر اقل 70 درصد که نشه 90 درصد خدا صلی الله علیه و سلام نماز صدا جور کنه اینو وقتی که امام جور کنه باید مقتدی از او اطاعت بکنه ات نشکه که مقتدی پیش ازی یا از سجده خیزه یا از سجده بسجده بره یا مثلا او بسمی الله و علی من حمید است مقتدی ها وقت در رکوع و امیر ما بچشم خدا چندین جایی نمیگن یگان جایی که یگان امام نماز کنه که خاصه که درست بده و خاصه مقتدی ها یکی رو ببینی خدا کو گرفت تا در پایان زیاد کردند. با خودم؟ شما قیمه میگیم تو خنده میکنی که ما هیچ کار اون که خودتون کردین یعنی پس. آه، به دومیش سعی میای خیلی سعی میکنه. خودتان وقتی که مام بسیاریالله کپک مندی اگر ما باشه خوب کپت میکنه. میمونه که خوب ما تو یک تو کپک بانی. لکن نماز به این عزیز به ترتیب رسول خدا علیه و علی عالیکم بسنتی و سنت خلفا الراشدین المهدیین پیغام اسمعین سنت ما را بیرین و طریقی خلفای راشدین میبینین را بین از خلفای راشدین یک یک مثال بردان از حضرت بکر صدیق حضرت عثمان حضرت عمر بین یگان مثال از یی صحابه کرام از حضرت علی ازینیا ببینیم که نماز از یی چی قسم بود بس انا اوروہ سفیع 81 مشکات المسابيح عین ما کلام جای دیگه از دل خود کلامه حدیث نور دیه حدیثه است که در مدارس مدرسه دبلوم عربی کابل ما میخوانیم و علما احنا نمیخوانند امیر کتاب رسمی است که در در که هست در کل مدارس اینی کتاب کتاب مقرر رسمی است که میخوانم. و امیر برای ما مولوی سی راس پغمون و مولوی سی عبدالباقی البخار نمیطیمانی که کجا امامت اندر بسیار ریش سفین شده انی احادیث بر ما درس میده. عن عروة قال إن أبا بكر من رضي الله عنه صلى الصبح حضرت عروة رضي الله عنه عزتة... صل... نماز الصوبة خان فقرأ فيهما بصورة البقرة في ركعتين كلتينهما رواه مالك سوري بقرأ در درقات نماز الصوبة خان أوزات أو الصديق اگر یک نفر دو صفیه یا سیرک و چارکو از بقیر رو بخونید که آمد از طرف مختلی سر... ها متاجه است احزت وقتی وقت صدیق رضی اللہ هو در دور کار نماز فرض صبح سوری و خلاص کرد اینی احزت اول وقت علیکم. بعضی امری که ولایت کارایی که صحابی کردم کرده خلاصا فروشیدن کرده علیکم. به معنای وجوب است ولی ما واجب هم خیلی واجب شده. چی گرفتی؟ خیلی میگه نمازش خیلی اگر خی خیر خب و عن الفرافس ابن امیر الحنفی چی میگه؟ مگه ما اخفت سورت یوسف الا من قرآت عثمان ابن عفان ایاها ها به صبح میزم کسرت مکانه یورد دیده سبحان الله مگه من سوری یوسف چه قسم حفظ کردم مگه سوری یوسف ما من چطور حفظم شد اچ سر بخواد شد چه قسم حفظم شد مگه از که زیاد عثرت عثمان در دیلتالانه در نماز صبح کدام سراده میخواد سوری یوسف ها میخواد بلاخره حفظ من شد از من پوشت حضرت عثمان نماز میخوانم میخوانم میخوانم میخوانم یک وقت میکنم که سوره یوسف را من کردیم چون در هر نماز صبح زیاد میخوان نظرت عثمان را دلتالان کنم از نماز حضرت عثمان و حضرت عامر ابن ربیعه چی میگه میگه قال صلینا ورا عمر الخطاب رضی الله تعالی عنه میگه ما نماز خوندیم پشت حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه از صبح اینه بین که حضرت عمر ابن خطاب چقدر فقر فیه ما بسوره یوسف و سوره الحج دیگه قرائت سوره یوسف خام در رکعت دیگه؟ سوره حج خام اینی بود نماز صحابه کرام رضی عنه و حضرت عمر بن شعيب چی میگه؟ عن ابیه عن جده قال ما من مفصل صورت سخیرت ولا قد سمعت رسول الله صلى الله و سلم يا ام به الناس فی الصلاه المكتوبه میگه هیچ سوره بعض بعضی سوره ها و نام گفتم میشه سوره های طویل هستند من ما من المفصل سوره میگه سوره ای طوال مفصل میگه سوره های مفصل نه سوره خوردشه و نه سوره کلانش مون مگر که من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که در نمازهای فرضی را میخواند یعنی تمام سوره ها را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در نمازهای خود خوانده با رو هم خوانده آل امران رو خوانده دیگه سره ها رو هم در نماز فرضی خود خوانده ما دل ما یک روز یک بر ما یک سوری مکمل رو در نماز بخواند سی و چار آیت کامد پر حرکت او دارد کم کم نماز در در ما یک آیت که زیاد کنه امام سایبا در یک سال مکمل سوری خوب میشن او را س... به برادر تو خود نگفته که در مثال به هنفی میگه که روشنی شد ماناشی ایچ خود نیست که بیشی بیشی بیشی بیشی بیشی تاک خوب روشنی شد باز بخیر در کات اول عرای تلاتی رو بخوان در او دوم نا تاینه خلاص این در روشنی نماز گفتن نی نماز تا خوب وقت شروع که در نماز صبح باز این ای اقدر کلان بگی نماز صبح که اتا وقتی که مردم پس از مسجد مبراین و میرن بخوان راهی خدا حقیقت دیده بتانه روشنی شود. روشنی مانایشی نیست که تو قرار بیشینی بیکار. باید که <تصفيق> در نماز باید ترت روشنی شود. تو در جریان نماز باشه که روشن شود. <تصفيق> اون رو جمعه گذشت آبت سمه میشه. دست میداد در جریان درست خود در بخاری شریف این موضوع رو تشره کرد. خب بعضی‌ها میگن که والا اگر ما مثلا دو كور باد از رکوع سمیع الله و من حمیدا ربنا لك الحمد بگوییم بعضی‌ها میگن بده بیکار یا چیز دیگه هم هست ولی این روایت‌ها هست میگن عن عبد الله ابن ابي يفع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع فظهره من الركوع قال سمي الله لمن حمده الله ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اداره هم اگر بخوانی خواند ميدان و در حديث شریف رجاء حضرت رافع ابن ضافی مگه که قال كنا نصلي وراء وراء النبي صلى الله عليه وسلم گفتم ما را پیش پیغمبر سلام نماز میخواندیم فَلَمَّا و رفاه رأس من الركعة که سر از رکو بالا کرد. قال سميع الله لمن حمد فق. رجل و یک او سرش می‌گف ربانا الحمد حمدان کثیرا طیب مبارکان فی سميع الحمد سلام فلان من صرف وقتی که پیغمبرستم از نماز خلاص شد قال من المتكلم گفت کی کسی که امی دواره خواند کی بود بهانتر قال انا این گفت ما بدن پیغمبر رسول خدا قال رايت بدعتا و ثلاثين ملكا يبتدلونها ايهما يكتبها اول نگا پیغمبرستم میگم من دیدم وقتی که تو امی تسبیحات خوندی تون و صللاسیه یعنی سی و چند دیدم که هر کدام شماید کدامش زو می مشکنه در ثوابتون در ثوابتون بتون اگهت در زندگی خییت مرتبه دو مرتبه سی مرتبه اجازه بده می سی چند ملا یعنی الفااز تر نوشته بودن. برادرای عزیز اینی هست شکل نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلام ازی خاطر بسیاری کسایی که میگن که قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون میگن تو والا ایاتن پیشتر که استاد تفسیر کرد که فلاح برستگری و آیته شریف بیبین آیته شریف است که اطلب ما وحی الیک من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عَنِ الفحشاء وَالْمُنْكَرِ ان الصلاه بتحقيق بدون شک نمات انسان از بدیها و منکرات دور میکنه اینال ای آیتش آغاز سوره 28 بر ما میگه که خودش دیگه او رو تفسیر میکنه قد افلح او مسلمان های هستند که نماز حضرت علی کرم و چی قسم بود در یک روایت است که در پای حضرت علی سه کدام میخ بوده یا کدام خار بوده یا کدام چه بوده چیزی در پاش داخل شده و اون وقت وقتی نبود که این پاش انستزی میکرد حال خود داکتر سن انستزی یا دوای بیهوشی توایشانه پیشکاری میکنن انسان اگر عملیات بکنم انسان نمیره اون وقت نبود امی واسائل که مجازیک از جسمی زدن پاش اوه اوه درد داره بسیار درد داره کلیگی ایران بادن که آلمای پای حضرت امیر چطور کنه؟ تو دردش هم زیاد است داکتر هم ایران بادن یک نه فرامد گفو شما اصور نماز اصور فکر رو گرفتین؟ گفت نیسه گفت نماز وقتی حضرت علی کرماللواجون نماز میخوانه مثل یک درخت خشک بشه در مقابل خدای عزبا جد اصحاب کرام میگه وقتی که نماز میخواندن حتی پرنده ها میماد سر شانه میشیش فکر می که این کدام درخت خشک است سر های شانه هایشون میشیش موضوع که نماز میخوانیم خوب دیگه شاید کل چینی کلاخ خلات سر نماز چورنکی واسو بیدن بش سلام دستت اگر می زدی پرنده سر شانش میشیش آمدن گفتن او بره در حضرت علی کرم الله و عشون نماز خواندنش رو میبینین بانین که این وارد به سجده بره وقتی که تسجده رو خرق میشه در محبت خدای حضرت جسمش وجودش زندگیش کلش براموشش میشه فقط سجده در مقابل ذاتی که بیاد اون وقت باز برین بکشین اخار است یا میخ هست یک چیز است از پاش بکشه میبینید که احساس میکنه واقعا گذشتن حضرت علی رضی وقتی که بسجده رفت سبحان ربی الاعلام میگه نفر اومد است پیشش نماز که دست میزید میگه نکنه کوله کوله بسیار درد داره بسیار درد داره غرس نگی نگی باشه خیر است ولی وقتی که در نماز و سجده است پاشه کشید از پاشو نمیچوب یا میخیر هر چیزی که بود چیز هیچی احساس نکرد که از اسبایش نگشید یک از نماز خارج میشه میگی امیر از اسبایتی نمیشید برام خب اینا دو او از نمازهای از اونا به اون طریق میخاندن از حاوی کرام وقتی که نماز میخاندن سر و شانه هایشان کفتر ها وقتی که میامدن پرنده ها میشیشتن فکر میکردن که یا درخت های خوشک و اما وقتی تقدر نماز خدا عمی قسم به طریق اصحاب کرام خوندیم به طریق رسول الله صلی الله علیه و اسلام خوندیم اگر خوندی و می طریقه باز نماز در شخصیت تو تاثیر میکنن می نماز که بمانا میخونیم مانایش 20 سال است نماز میخونید باور بکا اگر دو روز بی پیش یک نفر پیش نیور دو روز مانای نماز کلش میخونید سبحانکالله ما را میخوایم مانایش یاد نداریم الحمدلله را میخوانیم مانایش یاد نداریم آیا در زندگیت کدام کتاب خواندی که مانایش نفهمی هر چیز میخوایم با مانایش را تنها در نماز چرا به خیلی میکنی با خدا عزواجل گپ میزنی و نه فهمی چی میگم اگر بفهمی که با خدا چی میگم سبحان ربی العظیم است پروردگار من که ذات با عظمت هست پس ما در تعظیم ذات با عظمت هم میکنم باز اینجاست که نماز انسان بسیار خوبش میشه خارجی ها چی میگن؟ خارجی ها که ما پرسان کردیم گفتیم مسلمان چند قسم است؟ گفت تو kinds گفت مسلمان ها دو قسم هست گفتیم چه قسم تو قسم؟ two kinds of muslim گفت یکی با choose یکی by chance گفت ما مسلمان شدیم با چوز. من یهودی دیدم، کفر دیدم، بدینی دیدم، بدبختی رو دیدم. اسلام دیدم که دین حق است. مسلمان شدم. اختیار کردم دینه. از شما چیز خرج ما چیز شما با چانس. چانس آوردیم داخل مسلمان پیدا شد. چانس یکی امینم بود که مسجد میری چانس است. یک چانس خدا داره ولی گفت بسیاری تا آخر کافر میمونی. چی شما دارین، خامبرشی شما دارین، دوزی شما میکنین، نماز درست شما نمیخوانین، روزی دن درست از شما نیست، رشوت خور شما هستین کل بدبختیها ها دا وجود داره. شما با چه یک بچه بود، پدرش بچه پاچاس گفت که بچیم، با 60 پدرش. مثال چه؟ مثال چه براتون بگویم؟ فارغ‌تحصیل. یک نفر بود. پدرش برای بچه خود گفت که بچه دیگر روز ده دارفه میری کار میکنی. بچه پاچه هست دیگر. بچه پاچه هست. چه هم ساوردن؟ بچه پاچه هست گفت مادرش برش گفت که جانه نه نه. رهی نزه نه نه نه. ما برای ده دارفه میتونم برو با پدرت بده بگه اینه دارفه قیدا کرده. خب پدرش یک دهیش مادرش پیدا می می‌کنه این تعداد کار می‌کنه، تعدادش می‌بینید داییه پارا, پارا با باز که می‌گم باز, باز پارا پسی تو کار زندگی ندارم لاکن تو برو کار دو، دو روز، سه روز، چهار روز مادرش ده گانه زیبا که مادرش نیست. حال چی دوکن؟ چی مادرم خونه است، میگه بود دیره بیار، حال باز دروغ می‌گم، میشه، امروز بود، بر. کرد. آورد. بورجی کنیم نفره پشت کرد پایر پیوی. یک کسی دیگر یک چیز سو دایی شدد برش برد. یک پایر پیوی دادش. پدر خدا داد. پدرش میخواسید. دوست پدر خود این نکنید. نکنید. چی نکنید؟ چرا چیارا؟ گفت که پیستهی ننا خودم ریخته. شما خود دین است که ننا... ننایتان برطان یاد داده از تحیات هم از مادر کلانت یاد گرفتیم ما خود دین قرآن خونده ایم یاد گرفتیم از این خاطر اصحاب پیغمبر که زامت کشده بدن سه انصار خدا در دین مصرف کرده بدن انرژی خودا انرژی خودا مال خدا، مال خدا و وقت خدا. سه اونسا را در دین مصرف کرده زن از این خاطر که دین یک کمک زرر میدید اصحاب پیغمبر دلش می حالا مثلا تو ده دان اولی دارید یکی ده دا بدخشان یکی ده دا تخار داری یکی ده دا قندار داری یکی ده دا کابل داری یکی دا قابل داری؟ یعنی نفر میبرد میه که اولیت که از پدرت مانده بودی اگه اولیش که دم قندار بودم اون را بنبارد کردن خراب شدن برو گمش که نو ت اما اگر یک خانه خودت زمین خریده باشی خودت دیوار رو شابات کرده باشی وقتت هم از صف کرده باشی خودت کار کردی نجیت هم از کردی پیسیت هم از کردی یک دروازش یک که هم وزور میزنه باید بسنی میکنی که چو بلا میمان از دروازش وزور میزنه خراب میکنیش این حال اصحاب پیغمبر سی چیز خودا برای دین داده بودن از این خاطر که کسی د این همه قدر شنیدن دو تا بچه هکای خرد خرد بچه های دوسته ساله و سیده ساله دیدون که ابو جهل پیغمبر خدا را دشنام میدن ما آز و معوض چی کردم؟ اگه میگه میگه من در قضا دیدم که بعد دو تا بچه های خرد و در پالیم استادستن. شما چی میکرین؟ میگفتن کاکا جان ما آمدیم شنیدیم که کافر لین ابو جهل رسول خدا را دشنام دادن و خدا با باشین شما کشته میشین از بدن میبینن ابوجه بسیار خطرناک از قبیص وان که ما کشته شین یا این مینظره خو دلیل ماردون که زندانم ما وای میشن تو غیرت 12 ساله و 13 ساله رسول زمان رسول خدا راست رس که بچکان خود چی غیرت داشت الماس کटक کتا ادمای ما این قصه اندامشون فقط اند در دگر واره پیشوش پیغمبر خدا را توهین میکنن این میگه دپ ما سی گمش کو دپ ما سی کو چببی غیرت تا بی تاب یی خدا صلی الله علیه که بایگان خدا پیشش بادگویی شه و ای دیپلوماتیک بکنند. دیپلوماتیک بکنند. دیک داو مجلس ام کتاب به روی اونم تو استاد دیادم روی اونم کافره که توحید و پیغمبر خدا میکنم مثلا بار که بکشیدن حکیقت در روز قیامت با غیرت باشه اولین شین داری چیست؟ نگه مهتری گرب کام شیری دارست شب خطر کن ز کام شیر بجوی یا بزرگی و عز و نعمت و جا یا چو مردان مرگ روی روی, روی. اولین شیر داگی نمیگر؟ امی شیر که اگر, برن... اگر قوت و سلاوه در دا دان شیر هست شو خطر کن از دان شیر بکشیش یا از دان شیر میگیریش و ای که مرد وارو میموریم از این خاطر در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام صحابه کرام کسانی بودند که ایمان بسیار قوی داشتن چرا دا ایمان قوی داشتن؟ که نمازشان مثل نماز پیغمبر بود کلمهشان مثل خواندن کلمی پیغمبر بود حرکت‌هایشان مثل حرکت پیغمبر خدا بود از این خاطر وقتی که میگفت لا اله الا الله کجا میتونه که مولا اله الا الله را تکرار درست به این حد برسه میگه فاصله شی شی خدا